یکی از اصطلاحاتی که در کتب سابق خیلی به کار برده می شده یعنی که اصل مصنف تسلیف فرق بین اصل و مصنف عبارت از اینه اصل مطالب ماخوذ از مصادر اصلی مصادر معتبر امام یا پیغمبر یا دست اول از اونا که از کتابی به اون منتقل نشده باشه ممکنه بلاواسطه عقص شده باشه از معصوم ممکنه واسطه عقص شده باشه ولی نقل از کتابی به کتاب دیگه منتقل نشده اون وقت اون میشه اصل مصنف عبارت از این است که قبلان کتابی تعلیم شده و احادیسی نقل شده در اونجا یک کتاب دیگه همون چیزهایی که در قبل قبل بوده به کتاب دیگهای به یه ترتیبی دیگری به یه دیگری همونم منتقل شده بیبینید تاپی پیانان کتاب بعدش رسائل و بهار رو مستقرک و هم از اینجای شزا میشه قبل از کافی محاسن و برقی بوده نوادر الحکمه بوده چی بوده از اونا منتقل شده به کافی اونا همه اینا مصنب هند اون چند تای معدودیه که اونا از کتاب به کتاب چیز نشدن که شموزده تا دستور آقای بروجردی چاپ شد اصول ست عشر اونا برن اصلا البته کتاب مفهوم اعن داره از اصل و مصنب مقسام برای هر دوز.